اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم من کذب علالله و کذب بصدق اذ جاءه علیسه فی جهنم مثول للكافرین پس چه کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را چون به سراغ او آمد تگذیب کند آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولائک هم المتقون و کتی که سخن راست را آورد، و آن را تصدیق کرد، اینانند که پرهیزگارانند. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاؤ المحسنین برایشان هرچه بخواهند نزد پروردگارشان آماده است این پاداش نیکوکاران است ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون تا خداوند بدترین اعمالی را که مرتکب شده اند از آنها دور کند و آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد الیس الله بكاف عبده و يخوفونك بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له منها آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست و تو را به کسانی غیر از او می و هر کس را خدا گمراه کند پس او را هیچ هدایتگری نیست و من الله فما له من مضل علیس الله بعزیز انتقام و هر کس را خدا هدایت کند پس او را هیچ گمراه کننده ای نیست آیا خداوند پیروزمند انتقام گیر نیست ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كَاشِفَاتُ كاشفات ضره أو أرادني برحمة هلهن ممسكات رحمته قل حسبي الله و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلما گویند خدا بگو آیا دیدید آنچه را که به جای خداوند می اگر خداوند زیانی برای من بخواهد آیا آنها خواهند توانست زیان او را برطرف کنند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها خواهند توانست رحمت او را باز دارند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه توکل کنندگان بر او توکل می کنند. قل یا قوم اعملوا على مکانتكم اینی فسوف بگو ای قوم من شما بر روش خود عمل کنید من نیز بر روش خود عمل می کنم پس به زودی خواهید دانست من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم چه کسی عذاب خار کننده ای به سراغش می آید و عذابی دائم بر او فرود می آید اینا انزلنا علیکل کتاب لیناسی بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أنت عليهم بوكیل بیگمان ما این کتاب آسمانی را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم پس هر کس که هدایت شود به سود خود اوست وهر کس که گمراه شود تنها به زیان خودش خواهد بود و تو بر آنها نگهبان نیستی الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل خداوند جانها را به هنگام مرگشان قبض می‌کند و نیز جان آنها که در خواب خود نمرده‌اند قبض می‌کند آنگاه جان کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می‌دارد جان دیگری را تا مدتی معین باز پس میفرستد. بی گمان در این امر های روشنی است برای گروهی که اندیشه می کنند ام تتخذون من دون الله شفعاء قل اولو کانو لا يملكون شيئا ولا يعقلون یا غیر از خدا شفیانی اند؟ به آنها بگو اگر چه مال که چیزی نباشند و چیزی را درک نکنند باز هم از آنها شفاعت می تلبید قل لله الشفاعت جمیعا له ملك السماوات والارض ثم ایلیه ترجعون بگو تمام شفاعت از آن خداست فرمان روایی آسمانها و زمین از آن اوست سپس همگی به سوی او بازگردانده می شوید و اذا ذکر الله وحدهش مأذت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر من و هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند متنفر و بیزار می شود، و هنگامی که کسانی غیر از او یاد شوند آنگاه است که آنها شادمان می قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادت انت تحکم بین عباد که فيما كانوا فيه يختلفون. بگو پروردگارا ای آفریننده آسمانها و زمین دانای نهان و آشگار تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف می کردند داوری خواهی کرد. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعهم و مِثْلَهُ معهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ العذابِ يومَ القيامةِ وبدلهم من الله ما لم و اگر تمام آنچه که در روی زمین است و همانند آن همراهش از آن کسانی باشد که کس ستم کردند یقینا همه را به خاطر سختی عذاب روز قیامت برای رهایی خود از عذاب فدا کنند و برای آنها از سوی خداوند چیزهایی آشکار می شود که هرگز گمان نمیکردند. کردند. و لهم سیئات ما کسب و بهم ما کانو بهی یستهزئو. و بدیها آنچه انجام دادند برای آنها آشکار می شود و آنچه به آن مسخره می کردند آنها را فرو میگیرد فایذا مثل انسان ضر دعا ناتم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم الَّهِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس چون به انسان رنج و زیانی برسد ما را می‌خواند آنگاه چون از جانب خود به او نعمتی عطا کنیم می‌گوید به سبب دانایی و لیاقت خودم به من دادند بلکه این آزمایشی است ولی کن بیشترشان نمیدانند. قد قال هلذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا یک سبون به راستی این سخن را کسانی که پیش از آنها بودند نیز گفتند پس آنچه را به دست آوردند برای آنها سودی نبخشید فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين پس بدیهای آنچه چه به آنها رسید و کسانی از آنها که ستم کردند نیز بدیهای آنچه می کردند به زودی به آنها خواهد رسید و آنها خدا را آجس کننده نیستند و راه گریزی ندارند اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و این نفیذلی کلآیت نقومی آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هرکس که بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این نشانهایی است برای گروهی که ایمان میآورند؟ قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ای پیامبر از جانب من بگو ای بندگان من که بر خود اصراف و ستم کرده اید از رحمت خدا ناامید نشوید همانا خداوند همه گناهان را می بخشد یقینا او بسیار آمرزنده و مهربان است و انیبو الى ربکم و له من من قبل أن یأتیكم العذاب. العذاب ثم لا تنصرونو به سوی پروردگارتان باز گردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آنکه عذاب به سراغ شما آید انگاه از سوی هیچ کس یاری نشوید و اتبع احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان يأتيكم العذاب من قبل این یکتیکم العذاب و انتم لا تشعرون و از نیکوترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه ناگهان عذاب به سراغ شما آید در حالی که شما از آن بیخبرید ان... تقول نفس يا حسرتا على ما فردتو فی جنب الله و این كنت لمن الساخرین تا مبادا کسی در روز قیامت بگوید ای افسوس بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان از مسخره کنندگان آین او بودم او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد یقینا از پرخیزگاران بودم او تقول حین تر العذاب لو لي کرتا فاکون من المحسنین یا هنگامی که را آبرا می بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم تا از نیکو میشدم. بلا قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین خداوند میفرماید آری آیات من برایت آمد و تو آن را تکذیب نمودی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی ویوم القيامة تر الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مخو للمتكبرين؟ بر روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند می که چهره های شده است. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ وینج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون و خداوند کسانی را که پرخیزگاری کرده‌اند، باراستگاریشان نجات می‌دهد. به آنها رسد و نه آنها اندوه‌گین شوند. الله خالق كل و علی کل شیء وكیل. خداوند آفریدگار همه چیز است. و او بر همه چیز نگهبان است له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله اولائك هم الخاسرون کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خدا کافر شدند اینان زیانکارانند قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون بگو ای نادانان آیا به من فرمان می دهید که غیر خدا را پرستش کنم؟ وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ و به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وعی شد که اگر شرکاوری یقینا اعمالت تباه و نابود می شود. و از یانکاران خواهی بود بل من بلکه تنها خدا را پرستش کن و از شکر گذاران باش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 و آنها خدا را چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند، در حالی که روز قیامت تمام زمین در مشت اوست و آسمانها در هم پیچیده در دست راست اوست، او منزه و است از آنچه شریک او میپندارند، ونفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است جز آنها که خدا بخواهد بیهوش شده و بمیرند، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان آنها به پا خیزند و می نگرند.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 و زمین به نور پروردگارش روشن می شود، و نامه اعمال نهاده شود، و پیام و گواهان را بیاورند و در میان آنها به حق داوری شود، و به آنها ستم نخواهد شد. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون، و به هر کس پاداش آنچه کرده است به تمام داده شود و او به آنچه انجام می دهند داناتر است. و سیقا الذین کفروا الى جهنم زمره حتی اذا جاؤها فتحت ابغابها و لهم خزنتها،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 بلا حقت و بلا ولكن العذاب على که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده میشوند تا وقتی به کنار آن رسند درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند آیا پیام برانی از میان خودتان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از دیدار امروزتان هشدار دهند گویند آری ولی کن فرمان عذاب الهی بر کافران محقق شده است قیل ادخلوا ابواب جهنم مخالدین گفته شود از درهای جهنم وارد شوید جاودانه در آن بمانید پس چه بده است جایگاه متکبران و سیقا الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وكثاني که از پروردگارشان ترسیده اند گروه گروه به بهشت برده میشوند تا وقتی به کنار آن رسند و درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند، سلام بر شما پاکیزه بوده اید، خوش باشید، پس جابدانه به آنوار چوید. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَبِهِشْتِهَا گُوْيَانْدْ هم و ستایش مخصوص خداوندیست است که وعده در حق ما راست بود و سرزمین را به ارث به ما داد که از بهشت هر جا که بخواهیم منزل میگیریم پس چنی کوست پاداش عمل کنندگان وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفرشتگان را می‌بینی که بر گرد ارش حلقه زده‌اند به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان مردم به حق داوری شود و گفته شود همد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان. آمین. ح. میم. تنزل الكتاب من الله العزيز العلیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند داناست. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب زی الطول لا اله الا هو الیه المصیر آمور گناه و پذیرنده توبه سخت عقوبت صاحب نعمت است هیچ معبودی به حق جز او نیست بازگشت به سوی اوست ما یجادل في آیات الله الا الذين كفروا فلا يغرر كتقلبهم في البلاد در آیات خدا جز کسانی که کافر شدند جدال نمی کنند پس رفت و آمد آنان در شهرها تو را نفری بد.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 بیش از آنها قوم نوح و گروه های دیگر پس از آنان بودند، پیام برانشان را تقضیل کردند، و هر امتی آهنگ آن کرد که پیام برش را دستگیر کند، و به باطل جدال کردند، تا با آن حق را از میان بردارند، پس من آنها را فرو گرفتم، پس بنگر عقوبت من چگونه بود؟ وكذلك حقا كلمة ربك على الذين كفروا أنهم اصحاب النار فاینگونه فرمان پروردگارت بر کسانی که کافر شدند محقق شد که آنها اهل آتش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 کسانی که تابوا واتبعوا عذاب را حمل میکنند و آنان که برگرد آن هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آوردهاند استغفار میکنند میگویند پروردگار پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس برای کسانی که توبی کرده اند و راه تو را پیروی کرده اند بیا و آنان را از عذاب دوزخ نگهدار. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ لِلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگارا و آنها را به باغ های جاویدان بهشت که به آنها و عدداد وارد کن و همچون این هر که سالح باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان به همان بهشت وارد کن همان آ که پیروز مندو حکیمی و قیم ومن من تقیل سیئیات یومئذ فقد رحمته و هو الفوز العظیم و آنها را از بدیها نگاه دار و هر کس را که در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری مسلما به او رحم کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است ان الذين كفروا ينادون لما قتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون بيغمان کساني را كافر شدند روز قیامت ندا میزنند زنند که حقا که خشم و دشمنی خداوند نسبت به شما از خشم و دشمنی خودتان نسبت به خودتان بیشتر است. آنگاه که به سوی ایمان دعوت می شدید پس شما انکار می کردید. قالو ربنا امدت نثنتین و احییت نثنتین فاعترفنا بدنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل گویند پروردگارا ما را دوباره میراندی و دوباره زنده کردی پس اکنون به گناهان خود اعتراف کردیم آیا راهی برای خروج از جهنم وجود دارد؟ ذلكم بی انهو اذا دعی الله وحده كفرتم و این به بهی فالحكم لله العلی الكبیر به آنها گفته میشود این عذاب بدان سبب است که چون خدا به تنهایی خوانده می شد انکار می کردید و اگر به او شرک آورده میشد ایمان میآوردید پس اینک داوری از آن خداوند بلند مرتبه است هو الذی يریكم آیاته وینزل لكم من السماء رزقا وما یتذكر الا من ینیب او کسی است که آیات خود را به شما نشان میدهد و از آسمان برای شما روزی میفرستد تنها کسی پند میگیرد که به سوی خدا رجوع می کند فدعو الله مخلصین له الدین ولو کری الكافرون پس خدا را در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیدید بخوانید. و اگر چه کافران خوش نداشته باشند بافیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذرا يوم التلاق او بالا برندی درجات صاحب عرش که روح را به فرمان خیش بر هرکس از بندگانش که بخواهد میفرستد تا او مردم را از روز ملاقات بهترساند. یومهن بارزون، لا یخفا على الله منهم شی، لمن المملکه اليوم لله روزی که همه آنان آشکار شوند چیزی از آنها بر خدا پوشید نخواهد ماند خداوند می‌فرماید امروز فرمان فرمانروایی از آن کیست آنگاه خود می‌فرماید از آن خداوند یگانی قهار است الیوم تجزا کل نفس بی ما کثبت لا ظلم اليوم این الله سریع الحساب امروز هر کس به حسب آنچه کرده است پاداش داده می شود امروز هیچ ستمی نیست بیگمان خداوند زود شمار است و يوم یوم الازفت اذ القلوب لد الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع وانها را از روز نزدیک به ترسان انگاه که دلها لبریز از قم به هنجرها رسد برای ستمکاران ندوسی وجود دارد و نه شفیعی که شفاعتش پذیر افته شود. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور خدا خیانت چشم ها و آنچه را کسینه ها پنهان می‌دارند میداند. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْبُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ و خداوند به حق داوری می کند. و کسانی را که به جای او میخوانند به هیچ چیز داوری نمیکنند بیگمان بی گمان خداوند همان شنبای بیناست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 آیا آنها در زمین سیر نکرده اند؟ پس بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سختتر بودند. پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان فرو گرفت و برای آنها از عذاب خدا هیچ پناه دهنده نبود؟ ذالك بانهم كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب این بدان سبب بود که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها میآمدند پس آنها کفر می‌ورزیدند انا بر این خداوند آنها را فرو گرفت، بیگمان اونی رو مند و سخت کیفر است. و لقد ارسلنا موسی بی آیاتنا و سلطان مبین براستی ما موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم. الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحرون كذاب فرعون هامان و قارون پس آنها گفتند او گرید رو گوست بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال پس چون حق را از جانب ما برای آنها آورد گفتند پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای خدمتکاری زنده بگذارید و نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست و قال فرعون اقتل موسى و ربه اینی اخاف این یبدل دینکم او این یظهر فی الارض الفساد و فرآن گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را برای نجات بخاند بیگمان من میترسم که دین شما را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد انگیزد وقال موسى انی عدت بربی وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب و موسی گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمیآورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم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 وئیک صادقی صبکم بعض الذی یعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشت گفت: آیا مردی را می کشید برای آنکه می‌گوید پروردگار من الله است؟ و همانا دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است، و اگر او دروغ باشد گناه دروغش برگردن اوست، و اگر راست گو باشد پاری از آنچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید، بیگمان خداوند کسی را که اصراف کار و دروغ گوست هدایت نمی کند،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 لا ای قوم من امروز فرمان از آن شماست در این سرزمین پیروزید پس چه کسی ما را از عذاب خدا یاری می دهد اگر عذاب بیاید فرعون گفت من شما را جز به راهی که مصلحت می بینم سفارش نمی کنم و شما را جز به راه صحیح و رشد هدایت نمی کنم وقال الذي مثل يوم الاحزاب. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من به راستی من بر شما از روزی همانند روز گروه های پیشین میترسم مثل دأب قوم نوحوعاد وثمود والذین من بعدهم وما الله یرید ظلما للعباد مانند حال و شیوه قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند و خداوند برای بندگانش تار ستم نیست ويا قوم انني اخاف عليكم يوم التنادى فاي قوم من بیگمان من بر شما از روزی که مردم یک دیگر را صدا می زنند میترسم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم و من یغنی فما له من هاد همان روزی که پشت کنن روی می‌گردانید و برای شما هیچ نگه ای از عذاب خدا نیست و هر کس را خداوند گمراه کند پس هدایت کننده ای برای او نیست. لقد جاید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 و به راستی پیش از این یوسف با دلایل روشن به نزد شما آمده بود پس شما از آنچه او برای شما آورده بود پیوسته در شک بودید تا زمانی که او مرد گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری را مبعوص نخواهد کرد اینگون خداوند کسی را که اصراف کار شکاک است گمراه می سازد الذین فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم مقتا عند الله وعند الذین كذلك الله كل قلب متكبر جبار. همان کسانی که بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد در آیات خدا مجادله کنند این عمل نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند سخت ناپسند و موجب خشم است این گونه خداوند بر دل هر متکبر سرکشی مهر می نهد. و فرعون گفت ای هامان برای من کوشک بلندی بساز باشد که به آن درها و راه ها دست یابم.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 و ما کید فرعون الا في تباب و بدرهای آسمانها تا به معبود موسی بنگرم و از او آگاه شوم و هر چند من او را دروغ گومی پندارم و این گونه برای فرعون زشتی کردارش در نظرش آراسته شد و از راه حق باز داشته شد و خیله و نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود وقال کسی قوم که ایمان آورده بود گفت ای قوم من از من پیروی کنید تا شما را به راه درست و ثواب هدایت کنم يا قوم انما هذه الحیات الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ای قوم من این زندگی دنیا تنها متاع زودگذر است و همانا آخرت سرای همیشگی است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 فاولائك یدخلون الجنة یرزقون فيها بغیر حساب هر کس کار بدی مرتکب شود پس جز به همانند آن کیفر نیابد و هر کس از مرد یا در حالی که مؤمن است کار شایسته ای انجام دهد پس آنها وارد بهشت میشوند در آن روزی بیشمار به آنها داده خواهد شد و یا قوم مالی ادعوكم ایلن النجات و تدعوننی ایلن نار ای قوم من چیست مرا که من شما را به سوی نجات می و شما مرا به سوی آتش می خانید؟ تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لی لي بهی علم و ادعوكم الى العزیز الوفار مرا دعوت میکنید که به الله کافر شوم. و چیزی را که به آن علم ندارم شریک او قرار دهم و من شما را به سوی خداوند پیروزمند آمرزگار دعوت می کنم لا جرم انما تدعوننی الیه له دعوة في الدنیا ولا في الآخرة و ردنا الى الله وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ قطعاً آنچه مرا به سوی آن دعوت میدهید نه حق دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت، و همانا بازگشت ما به سوی خداست، و بیگمان اصراف کارانند که اهل آتشند، فَتَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پس بزودی آنچه را به شما میگویم بیاد خواهید آورد من کار خودم را به خداوا گذار میکنم بیگمان گمان خداوند نسبت به بندگان بیناست فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق فرعون سوء العذاب پس خداوند او را از آسیب آنچه که برایش مکر کرده بودند حفظ کرد و بدترین عذاب آل فرعون را در میان گرفت ان النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب آن عذاب آتش دوزخ است که هر صبح و شام بر آن ارزمیشوبند و روزی که قیامت بر پا میشوبد گفته میشوبد قال فرعون را در سخت ترین عذاب وارد کنید و ازیت يتحاد جون فيما في يقول الضعفاء للذين استكبروا ان این مغنون عنا نصیبا و چون در آتش جهنم با هم دیگر میکنند می کنند پس ناتوانان به کسانی که تکبر ورزیدند می گویند بیشک ما در دنیا پیرو شما بودیم پس آیا شما امروز می توانید بخشی از آتش را که نصیب ما شده از ما دور کنید؟ قال الذین استکبرو اینا كل فینا این الله قد حكم بين العباد کسانی که تکبر برزیدند گویند بیگمان ما همگی در آن آتش هستیم همانا خداوند در میان بندگان داوری کرده است وقال الذين فِي النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عن ما يوما من العذاب و کسانی که در آتشند به نگهبانان جهنم میگویند، از پروردگارتان بخواهید تا یک روز عذاب را از ما بکاهد. قالوا اولم لم تک تأتیکم رسلکم بالبينات. قالوا بلا. قالوا فدعو. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال آنها میگویند آیا پیامبران شما با دلائل روشن نزد شما نیامدند گویند آری نگهبانان گویند پس خودتان دعا کنید و دعای کافران جز در تباهی نیست این موسیقی یقینا ما پیام بران خود و کسانی را که ایمان آورده در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می‌کنیم. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار روزی که عذر خواهی ستمکاران سودی ندهد و لعنت خدا برای آنان است و نیز سرای بد برای آنهاست ولقد لقد آتينا موسى الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب و براستی ما به موسى هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب قرار دادیم هدن و ذکران کتابی که برای خیرمندان هدایت و پند است فاسبیر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار پس ای پیامبر صبر کن بیگمان وعده خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه وهر صبح و شام به ستایش پروردگار ات تسبیه و إن <تصفح> الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله همانا کسانی که در آیات خدا بدون هیچ حجت و دلیلی که برای آنها آمده باشد مجادله میکنند، در سینه هایشان جد تکبر نیست که خود به آن نخواهند رسید پس به خدا پناه ببر بیگمان اوست که شنوای بیناست لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مسلمان آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. و ما یستوی الأعمى والبصیر والذین آمنوا و الصالحات وللمسیق قلیلا ما تتذكرون و هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند و همچنین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با افراد بدکار یکسان نباشند چه اندک پند میپذیرید این ساعت لآتیت لا ریب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون یقینا قیامت آمدنیست شکی در آن نیست ولیکن بیشتر مردم ایمان نمیآورند آورند و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين و پروردگار شما فرمود مرا بخانید تا دعای شما را اجابت کنم همانا کسانی که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی با خاری به جهنم وارد می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون خداوند کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشن قرار داد بی گمان خداوند بر مردم فضل و کرم دارد ولی کن بیشتر مردم سپاس نمیگذارند ذالکم الله ربكم خالق كل شيء لا اله إلا إله إلاهو فأنا تفكون این از خداوند پروردگار شما که آفریننده ی همه چیز است، هیچ معبودی به حق جز او نیست. پس چگونه از حق منحرف می كذلك کذالک یقف کل دین این گونه کسانی که آیات خدا را انکار می کردند، از حق منحرف می شوند.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 خداوند کسیست که زمین را برای شما قرارگاه و آسمان را همچون سقفی قرار داد و شما را صورت بخشید پس صورتتان را نیکو گرداند و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد این است خداوند پروردگار شما پس پر و بزرگوار است خداوندی که پروردگار جهانیان است هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وزن است. هیچ معبودی به حق جز او نیست پس در حالی که دین خود را خالص گردانید او را بخوانید حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است قل اینی أن ان الذین تدعون من دون الله لما جاءن ی البینات من ربی و أن ان لرب العالمین ای پیام بر بگو همانا من نه شده از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما به جای خدا می خانید. چون های روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و معمور شده ام که برای پروردگار جهانیان تسلیم باشم.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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلكم تعقلون او كسیاست كه شما را از خاک آفرید سپس از نطفه سپس از خونه بسته سپس شما را به صورت کودکی از شکم مادر بیرون می آورد. سپس بزرگ می شوید تا به کمال نیرو و قوت خود می رسید. سپس زندگی می کنید تا بعد از آن پیر می شوید. و از میان شما کسی است که پیش از این مرحله می میرد و به بعضی از شما مهلت می دهد تا به عجل معین برسید و شاید بیاندیشید. هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون او كسيست كه زنده میکند و میمیراند پس هنگامی که چیزی را بخواهد تنها به او میگوید موجود شو پس بید رنگ موجود می شود الم ترا الذین يجادلون في آیات الله آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟ الَّذِينَ كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يَعْلَمُونَ کسانی که کتاب آسمانی و آنچه پیام بران را بدان فرستادی این تقذیب کردند پس به زودی خواهند دانست ایدی الاغلال فی اعناقهم و سلاسل آنگاه که قلها و زنجیرها در گردنشان خواهد بود و کشیده می شوند فی الحمیم سمت نار در آب جوش سپس در آتش جهنم افروخته می ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. آنگاه به آنها گفته می شود کجایند آنچرا شریک قرار می دادید. من دون الله قلو ضلو عنا بل لم نكن ندعو من قبل شیئه كذلك یضل الله الكافرین به جای خدا گویند از نظر ما ناپدید شدند بلکه ما هرگز پیش از این چیزی را نمی خاندیم این گونه خداوند کافرم را گمراه میکند. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون إن بدان سبب است که بناحب در زمین شادمان میشدید و به آن که مینازیدید ادخلوا ابواب جهنم خالدين فیها فبئس مسول متکبرین از درهای جهنم وارد شوید جابدانه در آن بمانید پس جایگاه متکبران چه بد است فصبر این وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْنَتَ وَسْفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس ای پیام صبر کن بیگمان وعده خدا حق است پس اگر قسمتی از چیزهایی را که به آنها وعده داده به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم پس در هر صورت به سوی ما بازگردانده می و آنجا کیفر می شوند. وَلَقَدَ رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَفَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ و ما کان لرسول این یعطی بی آیت ایلا بی اذن الله فا اذا جاء امر الله قضی بالحق و خسره نالک المبطلون و به راستی پیش از تو پیام برانی فرستادیم داستان بعضی از انها را برای تو بازگو کردیم و داستان بعضی را برای تو بازگو نکرده این و هیچ پیام بر را نرسد که معجزه جز به فرمان خدا بیاورد پس چون فرمان خدا در رسد به حق داوری شود و آنجا بیهود گویان زیان خواهند کرد الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تَأْكُنُونَ خداوند کسیست که چهار پایان را برای شما آفرید تا بر بعضی از آنها سوار شوید و از بعضی بخورید ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدوركم و وعلی الفلك تحملون و برای شما در آنها منافعی است و تا با سوار شدن بر آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و نیز بر کشتی ها سوار می شوید. و آیاته الله تنکرون و خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد پس کدام یک از آیات خدا را انکار می کنید.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 آیا در روی زمین سیر نکردند، پس ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود، آنها از لحاظ تعداد افراد از اینها بیشتر بودند، و در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سختتر بودند، پس آنچه به دست می نتوانست آنها را بی کند، و عذابشان را دور نماید، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بِمَا مِنَ بهم ما كانوا به يستهزئون پس چون پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، به دانشی که نزد خود داشتند خوشحال شدند و آنچرا که مسخرش می گرفتند آنها را فرا گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کننا بهی مشرقین. پس چون عذاب ما را دیدند گفتند تنها به الله ایمان آوردیم و به معبودهایی که شریک او قرار داده بودیم کافر شدیم فلم یکو ینفعهم ایمانهم لم ما رأو بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسرهنا لکل پس هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان برای آنها سودی نبخشید سنت خداست که در میان بندگانش گذشته است و آنجا کافران زیانکار شدند بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزل من الرحمن الرحیم. نازل شدن این از سوی خداوند بخشنده مهربان است کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم کتابی است که آیاتش به روشنی بیان شده است در حالی که به زبان عربی است برای گروهی که می‌دانند بشیرا و نذیرا فاعرض اكثرهم فهم لا یسمعون بشارت دهنده و هشدار دهنده است پس بیشتر آنها رویگردان شدند پس آنها نمی‌شنوند وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وَفِي بَيْنِنَا بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون و گفتن دلهای ما از آنچه ما را به آن دعوت میکن در پوشش است و در گوش هایمان است و میان ما و حجابی است پس تو به شیوه خود عمل کن ما نیز به شیوه خود عمل میکنیم این.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 بگو من فقط انسانی مانند شما هستم به من وحی می شود که معبود شما معبود یگانه است پس به او روی آورید و از او طلب آمرزش کنید و وای بر مشکان الذین لا یؤتون هم, هم همان کسانی که زکات نمیدهند و آنها که به آخرت ایمان ندارند. این الذين آمعم الصالحاتله هم منون من بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها پاداش بیپایان است. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين بگو آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر میشوید و برای او همتایانی قرار می قرار میدهید او پروردگار جهانیان است و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين و در آن زمین ها را از فرازش پدید آورد و در آن برکت داد و خوراك و رزق اهل آن را مقدر و معین فرمود، اینها همه در چهار روز بود، بنابراین برای سوال کنندگان واضح و روشن گردید. تم استوائل السمائی و دخان فقال لها ولی الارض طوعا او فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ سپس به سوی آسمان متوجه شد در حالی که به صورت دود بود پس به آن و به زمین فرمود خواسته یا ناخواسته بیایید گفتند بدل خاء عمدين. فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفا. ذالک تقدیر العزیز العلیم پس آنها را به صورت هفت آسمان در دروز ساخت و در هر آسمانی کار و تدبیر آن آسمان را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغهایی بیا راستیم و از شیاطین حفظ کردیم این از تقدیر خداوند پیروز من ددانا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و سمود. پس اگر آنها روی گرداندند بگو من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و سمود بین می دهم إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا چون پیام بران از پیش رو و پشت سر از هر هرس نزدشان آمدند گفتند که جز خدا را نپرستید آنها گفتند، اگر پروردگار ما میخواست فرشتگانی را نازل میکرد. پس ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافر هستیم.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 اما قوم آد به ناحق در زمین تکبر برزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا ندیدند که خدایی که آنها را آفرید از آنها نیرو است و آنها هموار آیات ما را انکار می کردند فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَامٍ حسات لنذیقهم لنذیقهم في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزا لا ينصرون پس ما تند بادی شدید و سرد در روزها شوم فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و بیگمان عذاب آخرت خار کننده است و آنها از هیچ سویی یاری نخواهند شد. و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العما على الهده فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَتُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ و اما قوم سمود را هدایت کردیم پس آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند لذا به خاطر آنچه می کردند سائقه ی عذاب خار کنند آنها را فرو گرفت و نجین الذین آمنوا و کانون و کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگار بودند نجات دادیم و یوم یحشر الله إلى النار فهم یوزعون و روزی که دشمنان خدا را به سوی آتش گرد آورند پس آنها برای پیوستن دیگران بازداشته شوند حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و, ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون تا چون همگی به آن آتش دوزخ برسند، گوش هایشان و چشم هایشان و پوست هایشان به آنچه می کردند، بر علیه آنها گواهی می دهند و قالوا لجلودهم لیم شهدتم علينا؟ قالوا انطقن الله الذی انطق كل شیئ و هو خلقكم اول مرت و ترجعون و آنها به پوست هایشان گویند چرا بر علیه ما گواهی دادید در جواب گویند همان خدایی که هر چیز را به سخن آورده است ما را گویا ساخته است و اون خستین بار شما را آفرید و به سوی او بازگردانده می شبید تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون از اینکه مبادا گوش هایتان و چشم هایتان و پوست هایتان بر علیه شما گواهی دهند، گناهانتان را پنهان نمی کردید. ولی کن شما گمان میکردید که خداوند بسیاری از آنچه را که انجام می دهید نمیدانند كم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من این گمان بد شما بود که در باری پروردگارتان داشتید شما را هلاک کرد پس از یان شدید فایصبروا فالنار مثوى لهم و این فما هم من المعتبین پس اگر صبر کنند آتش جهنم جایگاهشان است و اگر پوزش بخواهند پس عذرشان پذیرفته نمی شود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 این كانوا و ما برای آنها هم نشینانی از شیاطین قرار دادیم پزشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها برایشان بیاراستند و بر آنها نیز همانند امتهایی از جن و انس که پیش از آنها بودند فرمان عذاب تحقق یافت بیگمان آنها زیانکار بودند و الذین كفروا لا تسمعوا لهذا تغلبون و کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید و در هنگام تلاوت آن جنجال کنید و سخنان بیهوده بگویید شاید پیروز گردید فلنذیقنن الذین كفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اتوالذی کانو يعملون پس یقینا کسانی را که کافر شدند عذاب سختی میچشانیم و آنها را به خاطر بدترین اعمالی که انجام میدادند دادند کیفر می دهیم ذالک جذاء اعداء الله نار، لهم فی هادار الخلد جذاءم بما کانوا يجحدون. این آتش کیفر دشمنان خداست، که آنان در آن سرای جاوی دارند کیفریست به سبب آن آیات ما را انکار میکردند. کردند و قال الذین كفروا ربنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا نجعل هما تحت اقدمنا ليكونان من و کتانی که کافر شدند گفتند پروردگارا آن دو کسان از جن که ما را گمراه کردند به ما نشان بده که آن دو را زیر پای خود قرار دهیم و لگد کوبشان کنیم تا از پاس ترین مردم باشند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 و ابشرو بالجنت اللتی بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنها نازل میشوند و میگویند گویند نترسید و اندوه نباشید بشارت باد به بهشتی که شما بعد داده می شدید نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و الآخرة ولكم و فیها ما تشتهی أنفسكم ولكم فیها ما تدعون ما در زندگی دنیا و نیز در آخرت دوستان و یاران شما هستیم و برای شما در آن بهشت هرچه دلتان بخواهد فراهم است و هرچه درخواست کنید برایتان حاضر است نزلم من غفور رحیم اینها پذیرایی از سوی خداوند آمرزندی مهربان است ومن من احسن قولا من من دعا الى الله و عمل صالحا و قال ایننی من المسلمین و چه کسی خوشگفتار است از کسی که به سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید بیشک من از مسلمانان هستم وَلَا تستوي حَسَنَتُ وَلَا سَيِّئَهِ اِدْفَعْ بِالَّتِی هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌ حَمِيمٌ وهرگز نیکی و بدی یکسان نیست همیشه به نیکو ترین شیبه پاسخته پس ناگاه میبینی همان کس که میان تو و او است، گویی دوست است. و ما یلقاها إلا الذین صبرون و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما جز کسانی که شکی با باشند، آن را نپذیرند، و جز دارنده بحری بزرگ از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد و اما ینذغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اینهو هو السمیع العليم هرگاه وسوسه ای بازدارنده از سوی شیطان تو را بازگرداند پس به خدا پناه ببر یقینا اوست که شنوا داناست و من آیاته اللیل و النهار والشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقهم این كنتم ایاه تعبدون و از نشانه های او شب و روز و خرشید و ماه هست برای خورشید و برای ماه سجده نکنید و برای خدایی که آنها را آفریده است سجده کنید اگر تنها او را می‌پرستید. پرستید فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا عند عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پس اگر کافران تکبر کنند واکی نیست پس کسانی که نزد پروردگارت هستند شب و روز او را تسبیح میگویند و آنان خسته نمیشوند. شوند و من از آیات خاشعه، تر زمین خاشع می‌بینی و آنگاه الذي انه از جمله نشانه های قدرت الهی این است که زمین خشک و فرسوده را میبینی که چون باران بر آن فرو میریزیم به جنبش در میآید و گیاهانش رشد می کند آن پروردگار توانمندی که زمین را زنده میکند، مردگان را نیز زنده خواهد کرد به راستی که او بر هر کاری تواناست این الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي <تصفيق> لا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَا النار خير خَيْرٌ من يَأْتِي آمِنَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا مَا شئتم تعملون بصیر. گفتار و رفتار کسانی که در مورد آیات ما کجروی می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود آیا کسی که به آتش دوزخ میافتد بهتر است یا آن که در روز رستاخیز ایمن از عذاب است هرچه می خواهید عمل کنید که بی تردید الله به آنچه می کنید بیناست. ان كفروا بالذكر لما جاءهم لكتاب آنان که این قرآن را که برای هدایتشان آمده است انکار کرده اند در قیامت عذاب خواهند شد این کلام الهی کتابی است شک ناپذیر لا یأتیه الباطل من بین یدهی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید سخن باطل از پیش و پس به آن راه نمییابد و از جانب پروردگار حکیم ستوده نازل شده است ما یقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب ای انبر کافران به تو همان سخنان باطلی را میگویند که به پیامبران پیش از نیز میگفتند بیگمان پروردگارت آمرزش و در عین حال كیفری دردناک دارد ولو جعلناه فرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماء اولئی که من مکان بعید اگر قرآن را به زبان غیر عربی نازل کرده بودیم کافران میگفتند چرا آیاتش عربی نیست و به روشنی بیان نشده است کتابی غیر عربی و پیامبری عرب ای پیامبر به آنان بگو این کتاب برای مؤمنان مایه هدایت و شفاست و آنان که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و قرآن برایشان نامفهوم است گویی آنان را از راهی دور صدا میزنند ولقد اتینا موسی کتابا اختلفت فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منه مریب. به موسی کتاب تورات را دادیم اما در مورد آن اختلاف نظر پدید آمد و اگر فرمانی از پروردگارت در مورد مهلت و آزمایش از پیش مقرر نشده بود بیدرنگ میانشان داوری می‌شد کافران نیز در مورد قرآن در تردید و بدگمانیاند من عمل صالحا فلنفسه و من و ربك من هر که به شایستگی عمل کند به سود خود اوست و هر که بدی کند به زیان خویش بد کرده است و پرورگار تو هرگز به بندگان ستم نمی کند